علت سواد یاس کی جواز میکنن کسی کی گوشت چطور بخورند عضوش باطل شود این حدیث از کتب سیحاستی وجود دارد شما احناف بر این عمل حدیث ابل نمیکنید چرا خب اول چه اتهام به زور مارو شما عمل نمیکنید چرا حدیث آمده چرا خب ما جواب میدیم شما تحقیق کردید چه کسانی بر این عمل نمیکنند جمهور امت بر این عمل نمیکونه نطن احناف شافی میگه وضو باطل نمیشه مالک میگه وضو باطل نمیشه ابو حنیفه میگه وضو باطل نمیشه محمد بن حسن سبانی میگه وضو باطل نمیشه ابو یوسف میگه وضو باطل نمیشه جمهور امت میگن وضو باطل نمیشه جمهور صحابه میگن وضو باطل نمیشه جمهور تابعین میگوین وضو باطل نمیشود تناکسی میگه وضو باطل نمیشه احمد بن حنبل و افاقم راهبه هست چجوری در یک بحث میکنن جمهور صحابی گفتند، جمهور طابعین گفتند، جمهور فقها گفتند، جمهور علاوه گفته عضو از باطل نمی شود تانا کسی گفت باطل میشه امام عمد بن حنبل هست، و امام اسحاق بن راحوه، این دو نفر گفتی حالا ما عمد نبیج شو مخالف جمهوری؟ حالا دلیل شو بگم؟ حدیثیک او نه ها میگیرند میگویند که داخل استه این حدیث اینجا حدیثنا وارد می حواله در مسلم هم آمده در ترمذی هم آمده فرمودن اگر کسی گوشتشو ترخورد خورد بگیرید کسی گوشتشو ترخورد خورد بگیرید گوشت گوشت نخورد عذو نگیرید جوابش این است که این وضو وضوئی اصطلاحی شرعی نیست شستن دهان و دست هست, هست دلیلش چی است دلیلش بیگا داخل کتاب تبرانی, تبرانی در کبیرش حدیثی آورده از نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نقل اگر کسی شیر شطر خورد یا گوشت شطر خورد وزو بگیرد شیر شطر یا گوشت شطر در حالی که خود امام احمد بن هنبل هم میگوید با شیر شطر وزو باطل نمیشود خود احمد ابن همبل و اسفاق ابراهیم بیبیه با شیر چطور روزو باطل نمیشه وا با گوشت چطور و بیبیه گوشت را اگر خام هم بخوره باطل میشه پختی هم بخور باطل میشه ما ببین خود چرا شیر شده نمیشه وا شیر هم متولد گوشت هست شیر از گوشت متولد میشه چرا با خوردن شیرش باطل نمیشه حدیث هم درست هست چرا اون رو نگرفتید هر جوابی که برای ما جواب تو همین است ما کنی مامی کنی چرا عمل نمی کری ما می تو چرا عمل نمی چرا مساله شیر رو رها کردی چرا با خوردن شیر وضو تو نمی شکنے چرا تانا با گوشت بشکنے و دلائل ما جمهور امت میگن نمی شکند اول دلیل جمهور امت که وضو نمی شکند این حدیث من صور شده است چرا حدید جابر ابن, جابر ابن عبدالله داخل صحیح بخاری رضی الله تعالی محمد جاست که وکن آخر امرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک و من ممبستت و نار آخری امر نبی کریم در مورد این بود که از چیزی که با آتش پخته بشه وضوح را نمیشه کنی بوشت رو هیچ کس خام نخورده هیچ کس خام هم نمیخوره پخته میشه اونجا آمده عدیس نی بخاریه وکان آخر امرهن رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک و رضو من ما مستد و نار. آخری عمل این بود که هر چیز با آخر مخت بشه آم آمده من ما. هر چیزی شطورم شامل میشه بسودم شامل میشه دناظرین باطل نمیشه گفت آر نبی کرو رضو نمی گرفت اگر کسی به این خاص هست من چجوری خاص کردی چجوری خاص کردید، همه نبی کرو شامل شد دو، از دو میگه از دو استله. و دست است. گوشت شطور و شیر شوتر چربیش بیشتر و گوشش بدتر از بری گوشت ها است. به خاطری فرمودن اینو بشوری وقتی این توجیه را اعلام جور کردن، حافظ برتری میاد در مجموعه فتاوا اینجا میافزد در جور میگه این توجیه ولاد مادر میشتوه است. اما کجا آمده که منظور از دو شستن دست و دهان است؟ ای که ای این که ایش مخاطرین که چلی بیشتر بوده این اعتراض کل حافظی برطیمیه اما قافل از این که حدیث اکراش رضی تعالی تعالیه داخل سرن ترمیزی در کتاب الافعیم آمده نبی مکرم السلام صلی وقتی غذا خوردن دستهار شستن و با تاریه دستهار صورت را مالی با زرائن و سر را فرمودن که این که وضوع غذا هست فرمود این وضوعی غذا هست لطف وض یه حدیث زار نبی کفار بودن که بارکت و توام آل وضو قبل و آل وضو بعد له بارکت که وضو قبل از قضا بگیری وضو بعد قضا بگیری حالا اول برو وضو بگی قضا بخور و وضو بگی بخامدیه این مینجوریه هیچ کس نگوسته حدیث صحیح حیامام آمده بارکت و توام الوضو قبلت و آل وضو بعد وضو بگی بعد از وضو بگی اینجا هم میگی منظور بارکت یه دیش روشن منظور از وضو دسته ها اینجا نه وضوی کلن وضوی کامل و حدیث بعدی که از ما حضرت معاذی بن جوال انشاءالله آمدی از فرمونن که ما میگفتین شوستن دسته و دسته را و دهن را بعد غذا خوردن ما وضو میگفتین جمهور میگویا منظور وضو این وضوها نه نکه شستن وضوی کامل بعد این حکمتی را علماء بیان کردند که استحبابه کسی بشورت اشکال نداره خوب اما واجب نیست که بی بیان و کاملا باطل شده، کامل وضو باطل نشده این حکمت رو بعضی میگن خود گوشت شطور چون که بر بنی اسرائیلیا ها حرام بود، اونها حرام تلیاقو بر خودش حرام کرده بود، نمیخورده در دین ما حلال شد، شاه ودیولا رحم الله به این اجازه که برای این تشکر و سپاسگزاری ما وضو بگیرید، برای ما عمر وضو بگیرید. اما این حد نه وجود،, وجود نیستین.